که در علمان شیعه قرم 11 هم جنون 11 هم مطرح شد و افتداعاً زیده بحث کتابات شفاهی بود که در رسو بحث سنت هم آمده بعد یواشواش با یه بانوانی بحث مستقلی مطرح شد حجیت جیهت زواهر کتاب اثرنی که آیان اخباری ها ممکن اوجیت ذواقر کتاب شدن البته ظواهر اینوارشون بیشتر در بحثای فقهی است و ظاهرا مرادشون این طور باشه که که به ذواقر کتاب در ابواب فقه نمیشه که یعنی به عبارت دیگر به تماس که به اصلاحات یا امور کتابی مثل اهل الله و و یا آمومات مثل اوفو به دقود او نمیشه ظاهر احرادشون این باشه الا با ورود تفسیر از احل بیت از فرم در کلمات مرمون مولا محمد امیدی افراد الملل یا آمده در قدر از عباراتش حتی به آمومات سنت هم نمیشه هر سوکم نفر از کتاب سلمون اندشوته الا با قیان از احل بیت امام سادر امام باقید ظاهرش این طور کما این که ظاهر بعضی از عباراتشون این است که اصولاً ظاهر کتاب کلن رو نیست نهد تو تو این به مبنای آقایان از کردی که بعد از این مبنا مبنای مردم محقق قومی مدرخ شد که قائل ظاهر کتاب از باب زن مطلق حجیت زن و احتمال راجع از اینجا مرموم ما حجته که اصطلاحاً از به باب انصلاب بفنن زنه و عرض شد به این که علمای اصولی ما متعارب شد این شد که بعد از زواهر کتاب بلکه از زواهر کلمه زن پیدا میشه بلکه این مطلق نیست بسید باب زنه مطلق زن خاص سیری و قبلاب که این زن حجته یعنی باقم گذاشتن گذاشتم به زن خصوص این زن خودجهت بود این مجموعه مبانی بود که تا حالا در کلمات شیخ و خود خودشیخ مبنای اخیر بذاره نموخیل و به خودجیه به خروجی بیرند به خودجیه به خودجیه خصوص از ظنوم زنده از ظاهر کلام و ظواهر قرآن رو هم مثل بقیه ظواهر کلام میدونن این و همین مبنا هم از کلم کش معلومه نایمی و اصفاد و دیگر هست این مجموعه سیر بحث از که چند بارم تک پر کردیم روشن بشیم از کردیم مسئله اولا خود خطابات شفاقی با ازرگرفتن و ازرگرفتن و ازرگرفتن قرآن و یا نحکام خب اقتصادش و یا محاضرین در زمان خطاب خیلی خیلی بریده هست اصلا اصل و اون بحث چندان روشن نیست که آقایان اون مطرح ها و اما بخصی رو که بعدها به این شکل در کلمات اصحاب ما آمده آن اختگاری ها اصحابا روایتشون رو همه در خوندیم که رو نمیشه اثبات کرد نه در خصوص احکام نه در مطلب آیات و مخصوصاً بدفرد هم اگر در آیاتی یک نوع مثلا به جهت منجه رو قبول بکنیم راجب به کنم که خمال آده این اصلا هدف از سنن و بیانه بخاطر اون هم موجه باشه نیازه به یک دیگه داشته باشه این خیلی بعیده قریبوز اندف کردیم مثلا در قرآن کریم از باب رضا تا آمده که احلافی که امهات یه چیزی از باب رضا ننانه سنت فیلمبری یه رومونن رضا ما یه رومونن هستند. این تعمیم داده رضایی هم خب میشه هموند دایی رضایی هم هم محرم پدر رضایی هم, هم. هدف آمدن سنت در حقیقا توضیح و تبدیل کتابه و غالبا سنت توصیه میده نسبت به کتاب اصلا در سوری پلا باید یک خب تفسیر میکن لازم بود در مسلقات از که نوعان نهی این نحبه به همه مسکن در این جرمه ازده خب در روایات آمده که در طلاب باین نیست در جایی که باین باشد در جوی که هست این توضیح دیگه میشه این خودش می از افعان میداره یا کلمی زرد عرض کردیم به به دیگران در چند مورد به دین خیرموزار و را تزار به ولده ها در چند مورد در باران آمده محدوده در سنت پیغمبر با عنوان لازره و لازره دائره توسه اموده تمام موارد اضرار و زره رو به اصطلاح خارج میکنه لذا این مطلب رو هم برترز کتاب اصلا بگیم ابهامی باشه اما راجب سنت انصافند دیگه این حرف اینا خیلی دور از آبادیه حتیث این مطلب هست به فرهنگ کلی، اهل به عنوان مفسر کرآن و یا نسند کرآن و, سنت و کتاب، از طرف که داره انبال راست کردم آیین کردن. اینه این یه یه اصول این بحث اصولی فقهی نیست. از طرف نیست. این بحثی که لوشنامه این بحث کلامیه. رأثیب و جسدا دیگه نیست. این درسته. الان و ادهی زیادی از روایاتی که اینها عباردن مقادش همینه این درسته این مطلب صحیح هم هست نبا تو اصول فهم بحث بشه جایی مناسبش نبا تو اصول فهم بحث بشه مثل بحث اسمت و جده قول محسوم و اونجور جا بحث بشه جایش توی اینجای اصول نیست این به اجمال کلام به مقاله اتباری ها و اما زنده مطلقی به حقوق محقق قومی محق قاعده این صاحبا ما به اون درجی علم و این مهمی نیستیم که یادیان هم به زنده مطلق بده او چوبا از خیلی بریده ما بتوانیم بیان بگیم مثلا کتابی که برای یک بشر در جمیع ازمان ها در جمعی زمین و تا روز قیامت این میخواد حجیت الهی باشه این رو با زن با گمان با خیال روستون خیلی انصافا هم به اهل انسانی و به حل انسانی احانه هم همی شن قرآن رو تو غلابه اون زن خاص هم که مرمون شیفت رو پر از کردیم این هم نیست برای اون نقطه که آیا حجیت زراهر با باب زنه یا از باب علم و عرفیست مثلا من رو صحبت میکنن که مراد من از این کلماتی شما معترمی علم و اصلا این زن نیست از زن خارج نیست از نه که از زن جزا زن باشه و خارج شده این مبنای مرمون شیخ و مشهور رو هم نمیشه قبول کرد و در این جهاز فرقی بین زواهر کتاب با غیر کتاب نیست البته این هست که ما باید قبول بکنیم خود تعاویر قرآنی خود ادبیات قرآنی یک پیچیدی خ اختصاصی هم به احکام نزده فرصول در جایی که تاریخ انبیاره گذشته هست در مثلا دو نهره یا سه نهره در برآن آمده دید اونها یک تفاوت هایی دیده میشه با این که یک قادصه واحد هم نیست زیده جزو مسئله اقایتی هم نیست جزو مسئله خانومی و مثلا مسئله اخلاقی هم نیست حالا این بحث دیگه مید. یعنی این رفتی به این قسمت بحثی یکی نداره خود ادبیات و ادبیات خاص نیست و این اشکال معروفی هم هستن میاد خیرم نگاه میکردم و از این رفتاران مسیحی ماده در اصطلاح که سرسر با اصطلاح مخالفن از هر پرشی که برآن خیلی مشبره یعنی خیلی روشنیست حالی خیلطه توش اخلاقه توش ففه خیلی به هم و به پاشیده و خب انصافش اگر بخویم باتن قیاس با تورات، و از این چورا دستان روشن اون دیگه داستانه, داستانه، اون دیگه داستان آمده. اون قسمه دیگه در داستان تاریخ روشنه اون یه کتابیست که که شده باشه قرآن و ها کزان این که الان در سی حسولا این اناظیرشون خیلی حالت پیچیگی و حالت ابهام هم نداره خیلی واضح اون انجیل مطاسی و حناس مطاس در در کلمه بود و کلمه خدا اینقدر مسیح ساز بشه بود میلیون ها در شهر این عبارت که مثلا یه عبارتی که یک کم مغلقه مثلا, مثلا در انجیل که در سرات کلمه بود حقیقت این کلمه چیه البته خود تعبیر از عیسی مسیح به کلمه در خود قرآن ما آمده حالا اون چیزی که اونها اونقدر روش کردن و کلمه تو یک اشاره که مختصری هم در قرآن و اون بحث سندین مرد که آمده تشماکار اونه که ما الان میفهمید این است که تعبیر قرآنی یه نوع داره پیچیدگی بردش خاص خودشه این که بحث های علوم القرآن اصطلاح یا و قرآن شناسی اینجا باید م و اصحابان از عرض کردن در نشان در همون اوائل اسلام که فیرم بردر مکشه بودن یکی از حضوران عرب اسلام که میاد بشن میگن گوش نکن کلام رسول الله رو با اون روش او اینه که من شعر دیدم نصرم دیدم این کلمات به شعر نه خورده به نصر الا که نصر مشبشه یعنی اینشوانی کلامی دارن مشرف این در حقیقت خب این اصلا صدام نمیفهمه استدلالی میفهمان فلان مسیحی فلان مسیح است. یه مطلب واضحه تا من که این اشعار یعنی است که الان استیال مثلا مثلا ذهن اون که با عنوان اسلام ستیزی و ما و در مقابل قرآن متن شبیه نشان هست بی نفس است اما نصر مشوشیه نصر روشنی نیست پس این خاص این ادبیات قرآنی هست این اینجوریه سه که همینطوری پیچ آمده این صرف دیگری داره و دیگری داره خود در حسب بقوله خودشون در نوشتاییش هم یه راز رمزی داره اون آیه مبارکه لحظ بحنه بود رو در حسب کتابت از بحنه می نیستیم یعنی لا می نیستیم بعد اون لحظ بعد لحظ بحنه نبودیم همزش نمی بودیم لاعظ بحنه نبودیم واقعی تو همون آیه اون از بحنه بود لو اذزل نداشته شده، علت از گذیند نداره. این در مسیحی خود, خود. علف زیادی علت از نداره. مثلا به دو تا کلمه یک ساختگی فراموش می‌کنم. لعذ به لا از به شده که قرآن لا از به اما قرآن در به هنر نمی‌کند. به آقاسیله او از به او او درست نوشته شده، او ترکی خودی. ازده هم همین بخش مذبعت کردن مثلا ازده هم توچی کردن که این خط صحابه بوده صحابه خط دلست نبودن ما باید مثلا ترخودن بنبیسیم ازده هم حالا برای این راز و رمتایی از بهنده رو برای شنوکاتی رو برمی کردن که نه این در این حد یک که چون مسلم اونیشه که برزدان رسول الله نادر شده خود الله و تلفز موجوده. لما قسمت هر فصل لازم نه ولو لازم نه اگر یه بایه هستن فکر نمیکنم کسایی که سام خلاصش کنن اینو اجرا اما لازم نه و من اجرا کنیم که کتاب اون رو لازم نه بینیم اما لازم نه بکنیم و اینه ظاهرش در کتابه در لم تسته علیه صدرابر و, و کیف صحیح و خبرم به ما لم تسته در بلیه با فاصله خیلی کم یکیش تسته آمده اکتباه قوائل هست تستهی او مجزونی بشه لم تسته میشه یکیش لم تسته علیه اون یاش اخفه میشه یعنی این صحبت از همون اول مرد زده تقل آلوی در زیده آلوی چون این نیکی منتقه نبودن یا توجه نبوده یا اشتباه مثلا صحابه بوده یا قد بلد نبودن یا قد بلد میوشن نکات زریفی رو در زیر همون آیه بلی فرق بین مالم تسته علیه سبرن مالم تسته و یکی فرق آزم مالم تسته سبود باشه که نیم کنن جمع ترده دوشت به هر حال اینها یک زراپت ها یک نکات و جهات خاصی ایست که حتی راجع به نحوه کتابت قرآن منطوردن فرمایی که کتابت یه امر اعتباری است این همون خط هیری معروضه که یه نوع تکانتر و یه نوع شکل از حتی سوریانی است از کتابت خود قرآن با این که احل مکه احل نوشتن نبودن و مکه اصولاً نوشتنشون کتابتشون اون مختصر یعنی که یک کسی بلد بود مترسه بود که خط موسط بود این خطی که الان قرآن آن باشید خط هیری یا خط کوفی سیدن یعنی خط سوریانی از شام یعنی خط سوریانی که این خط سوریانی در همون اوال مبعض توسط شخصی وارد مکه میشه به از اطلا مثل همون حتی معاویه مثل دا داماده داماد عبوسفیان خود از اوسفیان معاویه اینا خط رو یاد میگیرند توسط این شمع قرآن هم از افتداعاً با همی خط کوفی نوشته میشه اصلا خط سوریانی به هیره رفته از هیره به مکه آمده بعدها چون هیره خراب شد به کوفه آمد خط منصوب شد به جای خط کوفی حاصل یکی تا کوفی نیست خوده یکی هست هیره حدود هی 18 کلومتی نجمعه مخاطرش شلون تا, خوفه است. تا, خوفه است. تا خوفه است. شد خط کوفی اسالون میشه فارسی میشه خط کوفی فاصله دیریز کوفیه معلومه در خط کوفی در حقیقت هم خط دیریز باهع خط سوریه نیست این خطی که حساب مجید با اون نوشته شده این در نوشتن این پس این خط خود زوابتی باشه که عرض کردم یکی از زوابتش بوده که علف و بحثو نمی نوشتن مثلا ذالکه رو زلکه نمی نوشتن الله رو علله نمی نوشتن این زوابت خط کوفی است به میم نه تلبلفزی میکردن اما نمی که خب الان هم مصح شده زیاد کرد بیایم خ رو که تلب باز میکنیم بنویسیم اینکه در تلفش الله هم الله مینویم چرا لح می نویسیمزا کردن اززارکه رحمان رحمان رحمن رحمن چرا رحمن بیسیم رحمان, رحمان بیس. رحمان ال آخر این ای که جاش میجان نیست این, این این جهات خیلی ظدهش که باشه که صورت جااز رو جهات باطنیش و این راچه به این قرآنی است که اون بحث خاص خودش میخواهد یعنی از این بحث کلان خارج میشه و این خیال نکنه که مثلا آدم چرا یک قصه واحده در قرآن در بخش تاریخ در یک یا یک صورت میادی یک جایی دیه که همون یک هموزیات داره و اینکه یک قصه واحده هم از مالی کرد از رازم از کموسا در قرآن رازم از کموسا بیشتر داستان داره موسا به انتقادی که از متشربات کفایت یهود در مدینه و به خاطر جهت دیگری حالا جاش داستان انسه موسی بشره و همون مشرا داستان از ابوالین سوات الله و معالم اشع این یه بحث دیگری این اختصاص به بخش فقه هم نداره در کل مقایم قرآنی این هست خود ما اگر باشه در غیر آی که آیه وزوال یادشون باشه از بحث مقاصد احتمال موضوعی در مورد هر چیزی هست که موضوعش اون باشه مثلا در آیات کتاب تعبیر شایع امر به معروف ازمون نهی از منکر البته امر به رو نه اینکه یک شخص یا به قول روز یک وزارت خونه امر بکنه امر به در جامعه چون تو خیر امته و خرج الدنا شهرونده یعنی عمل معروف در معیار و امه یعنی همه هر طرف هم عامل باشن معروف. و کلمه امر چون درش وا اینجا مراد واداشتنه امر لبزی مراد نیست واداشتنه شامل امر فعلی هم میشه امر این معناست ما این احتمال داریم که در سوره ماهده که از اواخر سوره قرآنیست و اصولاً بناشون اینه که اگر هر هرچی رو باجر کرده باجر برد تفتیر حرام کرده حرامه و حاکم بر بقیه آیاته در این صورت ما که من آفرر ماند دا علات اللهده تاعاور ما ازضر و تققا این احتمال ما در محل فروش عز کرد چون مثلا در بحث فروش انگور به کسی که میخواد شراب درو بکنه در مقاصد به محرانش مت آیان ما دو تا بحث سنگین بر انصافن اینجا و که در محل این به این شنلی بحثنا کردند یکی بحث تاغان و آنهی بر اسم آدوان یکی هم بحث امر معروف نقی ازمان کرد که مثلا خروش انگور جوز مصابیق نقی ازمان کرد هر چی دارد می‌کنم؟ ما در اون مناسبت از چون نوشتن آقای مرازیه رو کنیم که مپسرین ندیدم کسی این رو نوشته باشه به حساب علم ناقض بکرم نیستی آقا نکرده و این احتمال به ما داریم که اصلا بدید نیست آیت آمنو از در را این همون امر محروفه لکن تعدیر رو عرف کرده، یعنی تغییر یک نوع ملایمتر و به اصطلاح امروزی ما, ما مثلا زدیگی با روان انسانی نداره چون کلمه امر همه با یک نوع آمریت رو سلطه و گفتن همه هم باید از عالی باشه اگر مصوی باشه و هر نیست مثلا تفاضا کسی که از مساوی از مصوی در این یک نوشکلی تر مطرح میشه. اما در تاان سلطه چلت های مطرح نیست ماده تاان از امنه کمک خیلی هم دقی بحث هم به آممررییت و این درقیت به احتیمال ماددی در بهند خودش اصلاً در من واقعا چیزی دیگه به ذهنن نیاز هست و که در کلمات خودمان و بزرگان نیامده انصافش کمی دست میگرده و با آنان ااجدار احتال مطرح کنیم. و در اینجا به اصطلاح اونی که در اینجا مطرحه مسئله یک بیجااز یا ع و کمک بر ب و حوا یعنی یک نوع همیاری در جامعه، و این همیاری بین سوه همه ی جامعه است مثل حاکم اسلامی با مردم مردم با حاکم زن با مرد مرد با زن بقال با مردم, مردم. یه یعنی همه با هم باید کمک رو تا آوه و این همیاری بر دو مهور قرار میگیره یکی نیکی یکی هم پریزگاری تا آوه و تدبا یکی شیشتر جنبه یه سر داره که پریزگاری باشه گناه نکنه یه پیش بیشتر جنبه ایجاب داره که بیرد باشه پس این بیشتر قفل کن این احتمال مازد منافات نداره آیات همه معروف با حال خودش محفوظه این در حقیقت یک نوع بیان جدید و روشنی است از به اسرح همون همه معروف اما با یک بیان لطیفتر و با یک بیانی ولذا مثلا بگیده ایچی که وزاره بگن حالا مثلا وزاره سه همه معروف درست کنید یه زات ثوابون بر درفراوس برقرار نداره که ثوابون همه کمک کنه مادهش که کمک باشه توش عاملیتی هست بالا یه وجود نداره اون مطلبی که درش وجود داره ایجاد اون اون کمک یعنی وقتی کسی ثوابونی شمه اون ثوابونی رو ما کامل بکنی که صاحب رحم جان کمک. این چه شو سابقا در زبان عرب اگر کمک از یک طرف باشه با عال رو ده. م عان اگر کمک از دو طرف باشه به این نحوه باشه که یکی کمک میکنه دیگری پشت او سر اون کمک میکنه بال اولی با او کمک میکنه یعنی این کمک به اینجوری خوبت خیلی من توی فارسی فکر نمیکنم به این دقت از یه آفر آمده باشه الان تو ذهن من چون توم بللوغ از فارسی نزنه اگر کمک رو یک طرف میکنه با به افعال اگر کمک از دو طرف به این شکل که یک کسی کمک میکنه طرف مقابل باز کمک به اولی میکنه با اولی کمک به دومی میکنه، این رو با به مفاعله به اما اگر به این شکل باشه که هر دو رو در نظر میگه در حال کمک به هم نیست که هر دان این تنگ بزرگی رو برمیدارن هر دو کمک میکنن اون حیعتی رو که میخواد انتظار بکنه از اون هیئتی که این دوتا هر دوت کمک هم دست به هم دادن کمک هم این کمک می کنه هم اون. نه اینکه اول این دوتون این این جا بالو تفاقیل یعنی این حیات رو در لغت عرب روی این خصوصیات ولذا این اشکالی که ساب جواهر بعد مرموهای خوبی و دیگران دارند علموهای بعد ازی قبل جواهرم هست چون از کردم از هرون قرم دوم که مسائل مطرف شد علمای احل سنت و بعد بعدها دوله مثلا قرم هشتون نهون ده هم علمای شیعه به اعانه در اسم رو مثل باب تعاون بر اسم گرفتن مثلا یک کسی انگور به توشه به کارکنه شراب، این گرفتن اعانه بر اسم و تمسط کردن به تعاون صاحب جوابی نه تعاون این نیست این اعانه هست راسته اش ولی چون آن یعنی یک کسی داره کار حرام انجام میده شما کمک می‌بریدش اینو بگیم یک کسی کار خوب انجام میده یک کسی یک بنیاد درست کنه در برای خیرات شما به اون کمک می‌رسید این الگن اعان اما تاون این نیست یعنی درست به دست هم دادن همین اون دیگه نیست یعنی خللو اخذن اون له اخر همان با این نکته که هر دو رو همزمان ببینه مثلا پس کنگه یکی زد تو گوش طرفتر یکی زد این باب مزاربه رو تاره. اما در حالی که دو طرف با هم گلاوی زن اینجا باب تفاقل تزارب بکار دارن مثلا باب تفاول رو در لغت عرب این زرافت رو در نظر گرفته، وقتی فعل از دو طرفه و حال اشتغال این دو طرف بفعل خوبه تفاقل اون وقتی که دو در رو میتن. اما یکی زدت چه گوش رو می کنید درست نگرده چه که زدت با باب به کار اون فعل رو در طرفه می بیم به ذهن ما میاد که اون تعبیر امر و در حقیقت تا آون از ببرد تاوه هم امر و معروضه بود در اونجا معروض هم خیلی و بگم بود در اونجا هم اونجا شکلی نمو خواهیم بگم نتیجه امرو معلوم در و این ایار رومت مثل تاقونه برده این تأبیر واضح تر و روشن تر فوق العاده و روشن تر من این معاصر که به اصطلاح کتابی نشه امرو معروف آن جز دوشت زرمت هم چیزه خب حالا برحالتون مسیحی ای بوده این بیسی بوده امروکایی بوده چیم بوده, امیلتوی بوده, امیلتوی بوده, امیلتوی بوده خیلی. اما خب خیلی زحمت کشیدن صحن. مثل کتابشون کتاب برای ترجمه درست کردش تو ترجمه کردی. خب اشکالی که نه از قلم انگلستان کی نرفت هدیت اونجا. مثلا مردم همکاری بکنن بعد دو تی تبدیل همکاری بهتر تا تبدیل همراه مرد. میگن چی کلام نزدیک. خب این جواب این مطلب هم روشن شد. در هیچ دلیلی از ما آمده خود به فهمان این مطلب در قرآن هم بوده به ذهن ما تبدیل شده شده. این یعنی در حقیقت اون امر معروف هم مراد اون جنبه عاملیت نیست حالا من یه مثال بدم برای اینکه بخیرم شهرزی بود عالم بود این هست در آیات قرآنی ادبیات قرآنی در مجموعه معارف ادبیات خاصیه مورد ملاحظه باشه و بجاین میاد که یه نکته خاصی بلکه نکات خاصی در اینجا مورد شده شد حالا اون مجموعه آیاتی کتابی واژ جای خودش راج که احکام هم مجموعه آیاتی که درش احکام هست تع کردم در عدی از فوت ارتشون نه مجموعه آ احکان پصد ذکر شده از اوچوب اردشون نه ظ این عد هم به ک مارسیه اساس نداره این مطلب اساس علمی نداره. مناقظات هماف که این قدر نیست کمتر بیشتر دیگه وارد اون بحث میشید دقت کنید. مجموعه آیاتی که در ف بهزر شده بعضی هاشون در ما کووس هم ری به آدممه فر نداره مثلا مرب با که به زنلامندل حی در سال ه زننابررگتی باششنن ز بررگ زننابر ارسیشون گزارش این که رفتیم مناحمای ننداود اونایی که خارج مثل مارب با که به زنلامندل ما مجموع و همینطور آیات دیگری که میشه مونا استیناس کرد استیناس ع از استطلا و این برضو همین باشه میشه. مجمعی آیاتی که واضح هست در باب احکام. یا آیه شریفه گفتون که در سرافت وجود آیاتی که در باب محرمات هست. مثلا به تعابیر مختلف ما عرض کردیم متعارف مثلا بحث که اصول تدوین شد متعارف در باب معاملات یا عبادات ثیغه لا تفعل بود. البته این عملا در قرآن نیست. ما توضیح دادیم. حرام ازو به سحر علیکم تحریم لا مانکه ها او باکن دارید زرو بی دارید به نزع عن بلا به اصطلاح آیه مبارکه طرز موقوت تنکاح حتی کتاب حتی ولا علی خب اینجا به ثیقه نفی اگر فرض کردیم فروختن انگور یک نفری که میخواد شراب بسازه این مصداغ تا آبانه سوال آیا اینجا بر برقصاد هم میکنه؟ یعنی رفت و عنوان نه رفت عنوان،, عنوان فروش انگور فروش انگور مصداغ تا آبانه نه خود نهجش کرده پس پس سناولین مثلا فوقها مکتور احضر سنت گفتن باطل به حرام باطل آیه این میشه اثبات که هم ما نحوه برخورد ما با آیات کتاب این هست این اصولی رو که ما علمای شیعه و سنی در تیه 1200 سال ریختن این خیلی نیمیتونه مجموعه آیات کتاب رو در خود جا بده این هست این انصافه ممکن است اگر در جایی فقط نهی باشه مثلا ولا تبره بزنان نهیر تنها باشه یک جور بفهمیم اما در جایی که خرمه آمده حرمه آمده حسن ممکنه چون یک ماده حرم میکنه ولی زفا از کردیم ممکنه از حرمه اسمول میته فقط نفهمیم خوردن میته حرامه خورده چون ماده حرمه از تحریم از محرومیت انسان محرومه انسان از این کار محرومه بگیم این محرومیت اونم در کتاب شامل حکل میشه شامل استعمال میشه شامل پوشیدن لباس میشه شامل نماز خوندن مانعی از نماز میشه شامل خرد و میشه خرد و خروش میتن می <تصفيق> شامل نجاست میشه هم می هست دکست بکنی اما خب طبیعتا در مثل فرسون لاپنکه و مانع که آبا مانکه کن جایی که نهیش بسیار نبیه دیگه ما نمی‌تونیم اینقدر مقانی واسع رو بفهمیم. این یک اشکال است. ما اگر بنا داریم با اون مبارسی که که اصول تو حسول کن در قرآن در آیات کتاب تیر داریم این انصافه با ترمیل این خیلی از بستخزن و حجیه کتابه این مشکل داره انصافه خالی از مشکل نیست چون قرآن دارای عذریات و زبان خاص خودشه یه نفتش اینه یه نفتش دیگه هم عرض کردیم با ادهی از, از مقاماتی که به اصطلاح ما در فر این توضیح رو با ادامتون وقتا ما سریع ما اصولاً در فر یا توی همه رساله های عملیه که نمیستیم یا کتاب فتوا متعرض جلد میشیم متعرض فرق اینه و ارز کردیم جل یک مبادی قبل داره که اولش ملاکاته بعد از اون حب بعد از اون اراده و بعدش هم جهده یه مراقل متاخر هم داره که اولش فعلیت ارسال رسول بعدش تنجزه وصول و مکلف بعدش هم امتصاله متعارف در فقه اینه ما متعارف اون در فقه به مقام جهد الان خطابش رو شرکت می‌نویسین آیات قرآنن که میخیل بخنین مقام چه الی می می‌زنین ملاکات رو نگاه نمی‌کنید اون مقامات متأخران نیست اما اکثر این در قرآن کریم اینطور نیست یه مشکل دیگیه در قرآن کریم ان الله یهد با ثوابی مقام خود با بغض هم ذکر شده ویژه نردی چیه ی رسول الله علیکم الیوس ولا و نا اراده و تمام ده. اصلا در ادیه از آیات بعد از این که ما سعی از اون مقام ملاقاتان بالا مقام قطس، مقام الاخرس. مقام, الاخرس. مقام, الاخرس. مقام الاخرس شده. این هست در آیاتی کتاب هم هستی. فرآورده ها، پس این آیه بعد از این که وجود بعد, بعد الله لیو الله و کمال خوی، ما عادتا در خیق مثلا همون که میگه پتیرنان و سریدن پیه با از همون مدار استنتاج و حکم میکنیم اونها رو به عنوان مثلا ملاکات و عنوان مبادی جل به عنوان مثلا موزی که من پتیرنان و احکام ای شبیه این معنام بکنیم اما در قرآن این هست این واقعیت در قرآن که آیات احکام همین فرصه اگه بحثی از میخواستم چند تا نمونه بیارم بیا طول میکشه تو زیاد حتی آلات طلاق آلات نکاح آخرش در الله و غفور و الله بکن کرد و الله و غفور و رحیم اصلا ذکر استفاد الهی و مقام الوهی یا مقام ربوبی این به حسب ظاهرش دیگه با اونی که ما در فیغیر میخواییم نمیسازه به حسب ظاهرش این طوره. حالا این چه نقطه ای داره آیا این نیست؟ یا یعنی یک براد معنی دقیق تر است اون بحث دیگه می سنید سوالتان خب مشکلاتی رو یعنی جمعه هایی است که روش بحث بکنیم نه این که نه آنه همه یه ایلخوادش بکنیم و نقطه مهمش نقطه فوق قلعه مهمش آیا می توانیم از اینهایی که در زید آیات آمده به عنوان مثلا متمم و نام ببریم درک بکنید این خیلی درسته مهمه مثلا داره که خداوند میگه تمام بکنید چون خداوند ها، شما رو پارک بکنه و یوریذ الله بکوم یوس خیلی خوبه شیخ حسین هم یوسف از ما افاده را که با یک نو میتونید به همین آیه تمسک بکنید خوب دقت بکنید بگیم اگر فاضل الصبور این بود اصلا نماز نداره چون یوس رو اینه خوفه چون آیه نه <تصفيق> خوب دقت بکنید وابد و سهوره توی آیه نه این چیزهایی که در یا آیات آمده که ما به حساب زاله به ملاقات میزنیم به حساب زاله به مقام خوب و بوض میزنیم چون بنای آیه اصولیانه که مقام خوب و بوض به اراده و کراحت این آثار و قانون در یعنی قانونیت قانون به شهره اگر شما علم به ملاک داشتید یا علم بابا به یا علم به کراهت و اراده داشتید این آثار نداره جزا و ثواب نداره اعتبار به جل خب تو خیلی از آیاتون باره که مقام به اصطلاح همین بابا به آمده الان طبق تصور رایش ما این این البته بحث تا بحث دیگر نیست و بحث شده میران این رو باید ایش فکری برش شد بی این مختصرات در اصول آیین برشن حل نمیشه که این واقعا یک نگرش جدیدی با آیات احکامه چون ما به طور متعارف از این تعاویر استنتاج فرده می کنیم طور متعارف اینه بله اگر جایی بیاد که تصریح شده باش به ملاق و ملاق تامه فقط بانعه هست ادهی سزار فقیق هدن دولا اشخ و علامتی لاختر اشعالا سلطه لیل این روایت سلسلی بسید این روایت زریف مدار نسلسلی سلسلی خب اهل سنن فعضیشون همیشون در نماز در عرض وقت مستحبه الا خصوص اشرا مستحبه سحقیبه ببینید مستحبه سحقیبه لولا امشو خرام خب این بحث شده لیکن متعارف به بحثایی ما فه حالا این بوده پس این نکته این که همشه سالا توضیح دادن این روز یک کنی واضح صحبت, صحبت که اگر آیات احکام رو جمع این یک بحث دیگه میخواده خیلی خوبه از همین الان اولی که علاقه ذرن بیان آیات احکام چند بکن نه خود خب زیادش این ملاقات و مبادی چهل و حبابو حتی در چیه الان خبت ها فهند کن الله ها انکن کن تون هم پس باب روزه چون اینا شد مثلا چیز به اصطلاح بضایه جنسی جایز نبود خدا میگه علم الله میدونست که شما خیلی حواستون درست نیموندش که هم کسا ولی ذهر آم خب این اگر ما بخوایم این رو یک تفسیر قانونی بکنیم این از خداوند خداونده اتا آن مقام جل نازر و مقام امتصال هم هست داره نگاه میکنه باقی خارجی رو لگه که همیشون این خیلی مهمه ما الان سو اصولی مقام انتصال نازر به مقام جل،, مقام جل نازر مقام انتصال میدیم مقام انتصال سر در سر در افتیار همه تفسیر اصولی ما اینه اما ظاهر اون آیه مبارکین که نه هم خدا تو مقام جل مقام انتصال رو هم در نظر میگیره خب این خیلی آسال و اصولی داره ما تو مقام جل مقام انتصال لذا این یک بحث دیگه می این بحثی که تا حالا متعارف شده خوبه که هم بکنن آیات احکام رو اون چی که الان در کلمات دیگران رو جمع آورده مثلا خودشون به یه بحثی نیست که بشه به این ذوقی به جواب بدی این انصافا به قول نمونه که زمان برد یعنی واقعا روش کار کرد این یه قصه جدید نیست انصافا نباید قبول بکنین و از چه اخباری هرگز نمی هرگز این یکی لکن این ظهور قسمتی که نمیبره این منشق میشه که ما یه دیل جدیدی رو با آیات احکام نگاه بکنیم دیل اما این که حالا فرصان آیه تمام هست آیه تمام جه خودشه آیه بروسی خودشه اما این ذهبی که ناظر میشه به مبادی جمع این منشق میشه که ما با یه دیل دیگه دیگاه که حتی ممکن از این دیل جدید در تفریعات فرقی اثر بگذاره اونی که الان با آخر کلام بود طبع در معصر جماعت قرآن شناسیه اما تو اصولی تو بحث نهی موجود زباقه اثر داره اما اونی که بیشتر اثر ماست تو فقه داره یعنی ممکن است صدر آده که بکنه یکی رو به فهمون چه ذهبش تفریح نتیجه دیگری در بعد این تفریحات فقه داره بله این بحث نظر من بحث حوشندی بحث نظر من بحث حوشندی اما بحثان متعرضه نشده سردادی بحثان آنگی صلى الله على محمد و